فصل هشتم روزها مثل برق گذشت و من که نمیدانستم این گذران برقاسا روزهای خوشبختی من است که میگذرد و دور می شود بی خبر از فردا قرق روزهایی بودم که پایانی برایشان تصور نمیکردم. اشتباه همیشگی شاید تمام انسانها را مرتکب شدم که در روزگار خوشبختی غرق میشوند. و فردا را از یاد میبرند. درست برعکس روزگار تیر روزی و بدبختی که فقط چشم به فردا و امید به آینده دارند سه هفته به عید مانده و امتحانهای ما شروع شده بود که آقای رضا از طرف بانک به اصفهان منتقل شد هنوز آن روز غروب را به یاد دارم محترم خانم در حالی که زیر کرسی خانم جون نشسته بود اشک ریزان این خبر را داد و مادرم با آرامش همشکیش گفت تو رو خدا محترم خانوم گریه نکن خدا پشت و پناهشون هاجاقا زنده باشن کدوم بچه برای پدر و مادرش مونده اینا همشون باید برن پی زندگیشون محترم خانوم گریان گفت نگو ملیه خانم. اگه باد به گوشم رسونده بود که ممکنه فاطمه همراه دور بره هیچ وقت دیگه زری رو به قربت شوهر نمیدادم. مادرم گفت قسمت هرچی باشه آدم نمیتونه تونه مانع بشه قسمت زری هم این بوده از اون گذشته از اینجا تا اصفهان که راهی نیست شما میری اونا میان دو سه سال که بیشتر نیست چشم به هم بزنید تموم میشه از اون طرف زنده باشن پسرهاد، ایشالله همین روزا آقا مهدی بچه دار میشه، سر به بچه اونا گرم میشه. محترم خانوم که از دست الهه و رفتارهایش به تنگ آمده بود، یک دفعه انگار داغ دلش تازه شد و سر درد دلش باز. چون با گذشت حدود سه سال از ازدواج آقا الهه نه تنها بدبینی های را از بین نبرده بود، بلکه به اختلافات و کینه ها دامن میزد و محترم خانم که به قول خودش دلش دریای خون بود روز به روز از قصه دچار بیماری های جور و جور می شد با بیعتنائی و نادیده گرفتن سعی میکرد کرد نتیجه رفتار نادرست را نشان بدهد ولی محترم خانوم بیچاره با خون دل سعی میکرد ظاهر را حفظ کند ولی اله لایق آن هم نبود به همین دلیل با آمدن اسم مهدی محترم خانوم عشق به چشم آورد و گفت چی بگم ملیه خانوم چی بگم؟ اسم مهدی که میاد خدا شاهده انگار یکی نیشتر به این قلب من میزنه حال ما هیچی من از حق خودم گذشتم و این دختره رو واگذارش کردم به خدا چیگرم از این کبابه که مهدی خودش هم زندگی خوشی نمیکنه. شده پوست و استخوند این دختره با این اخلاق و رفتار عوضی نمیدونم چی جوری این بچه رو خام کرد و به روز سیاه نشوند برای رضای خدا یکی نیست که این خانم ازش خوشش بیاد همه عیبی دارن از بخل و حسادت روی همه عیبی ای ایرادی میذاره. فکر میکنه اینجوری خودش خوب نشون داده میشه آخ یکی نیست بگه بی انصاف تو به چی مینازی به قد و باله رعنات به رخ ساره هم بی به خلق محمدیت من نمیدونم چی شد که مهدی این خاک رو دو دستی توی سرش ریخ که حالا باید نون رو توی خون بزنه و بخوره باز سیل اشکایش روان شد خانم جون گفت مادر دعاش کن مادری دعات گیراست جوونی و جاهلی حالا کاریست شده محترم خانوم گفت خانوم جون آخه دیگه راهی نیست که آدم امید به تموم شدنش داشته باشه چاهیه که مهدی تا عمر داره باید توش بسوزه و بسازه خدا میدونه هر وقت اینا رو میبینم انگار به جیگرم کارد میزنن همچین به مهدی نگاه میکنه انگار بنده زر خریدشه این دل بی صاحب طاقت نمیاره بگم اقلا نیان من نبینم پسره رو از مغازه باباش در به در کرد از فامیل بریدش دیگه از برادر و خواهر و پدر و مادر نزدیکتر هست هر وقت این دختر اومد یه ننگی به یکی از ما بست و یه حرف و سر و صدا در آورد و رفت مادرم در حالی که خودش هم عشق به چشم داشت گفت تو رو خدا محترم خانوم. اینجور خودتو داغون نکن میدونم اولادته دلت طاقت نمیاره ولی از خودخوری کدوم درد چاره شده؟ جوونن، سرشون به سنگ میخوره عاقل میشن. محترم خانم در حالی که سرش را تکان میداد گفت دیگه چه فایده؟ وقتی جوونی اون بچه و عمر ما رفت دیگه چه فایده؟ الان شما شاهدین چه اون موقع که با ما آشنا بودین؟ چه این چند وقته که مهناز عروس ما شده؟ از ما چی دیده؟ بابا آدمی رو آدمیت لازمه اگه کسی روی مرز خودش رفتار کنه مگه دیگران چه دردی دارن که باهاش نسازن مگه ما غیر از احترام چی میخواییم الان مهناز مگه با زری و فاطمه چه فرقی میکنه اونم همینطور مهدی میگه به خاطر مخالفت های اول شما از شما کینه به دل گرفته خب دختر ما از اول تو رو نمیخواستیم درست حالا عوض اینکه کاری کنی ما رو از فکر اول شرمنده کنی باید ما رو به این روز بنشونی؟ خدا شاهده شب و روز خودم رو نفرین میکنم که کاش قلم پام خورد شده بود نرفته بودم خواستگاری. مادرم با همدردی گفت راستی هم که آب را باید از سرچشمه بست دیگه حالا کاریست شده و آبیست ریخته چاره نیست. محترم خانوم پریشان گفت. چه می دونستم خانم خانوم جون؟ گرگی بود، لباس میش پوشیده بود. به مهدی گفته بود من اصلا تو رو به خاطر خونوادت و تعصبتون می هر رنگی فکر کنی در آورد و این پسر منم گول خورتی چی؟ من گیس سفیدم خام شدم. همین فاطمه و زری خدا می چشکی چه می که خدا رو خوش نمیاد اینا رو از هم جدا کنید. حالا اولین کسانی که چشم نداره ببینه همین دوتا هستن. اون روز که میخواست مهدی رو خام کنه عاشق تعصب و غیرت و خانوادش بود. حالا که خرش از پل گذشته ما شدیم بازاری و قدیبی و امول اون شده امروزی و فهمیده و عقل کل که کسر شنشه با است و برخاست کنه. خانم جون در حالی که استکان چای را جلوی محترم خانم میگذاشت گفت هرچی شما بگی حق داری من خودم به همین همینو میگفتم که اگه این دختر عقلش میرسید و تینتش خوب بود باید کاری میکرد که همچین خودشو توی دل اینا جا کنه از مخالفت روز اول پشیمون بشن ولی با این همه جون جز جو صبر و دعا چاری نیست به خدا توکل کن بلاخره خدایی هست که جای حق نشسته شما یه مدت میدونم سخته ولی مثل حاجقا دندون سر جگر بزار سراغی ازشون نگیر. بزار خودشون بفهمن فرق احترام و بی احترامی چیه. محترم خانم دوباره بغض کرد و گفت: دخه خانوم جون درد همینه این دختره هم فقط همینو میخواد مهدی بشه مویز بیدم که هر بلایی دلش خواست سرش بیاره. خدا شاهده وقتی بچه ها دوره هم جمعند و بگو به خنده این ها رو میبینم انگار غذا خون میشه از این گلو میره پایین. منم پسر بزرگ کردم به یه امیدی نه اینکه که واسه دیدنش بخوام منت بکشم دوباره اشکش سرازیر شد و اشک همه ی ما هم به دنبالش محترم خانوم چشمش که به چشم های گریان همه افتاد با شرمندگی گفت تو خدا ببخشید دم قروبی دل شما رو هم خون کردم مهناز زری پاشین ماده پاشین برین سر درساتون تقصیر منه که جلوی این زبونم رو نمیتونم بگیرم از بس که دلم پره خانم جون که عینکش رو برداشته بود و با گوشه یه داشت عشقهایش رو پاک میکرد. گفت ای بابا آدم اگه درد دل نکنه که دلش می که. خوب کاری کردی، اما مادر، هر وقت دلت میسوزه همیشه به این فکر کن که از قدیم گفتن هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی. این دخترم به شما نه، به خودش بد میکنه. حالا تا کی یک کجا نتیجهش رو ببینه؟ فقط باید آدم صبر و چشم بینا داشته باشه و طاقت بیاره. مادرجون حساب هیچی توی این دنیا گم نمیشه خاطرت جم راستی حالا فاطمه کی به امید خدا راهی میشه والا قرار آقا رزا امشب بره اسفهان خونه که دست همکار قبلیش بوده ببینه اگه مناسب و تر و تمیز باشه دیگه چند روز بیشتر وقت نداره باید اسباب ببرن مادر با تعجب گفت چه با این عجله؟ میتونن بعد از عید هم برن منتها آقا رزا رو که میشناسین صبر نداره میگه حالا که قرار به رفتنه سودتر برن بهتره فاطمه که میره، زری هم که میره، مهدی هم که اونجور مرتضا هم که بعد از عید میخواد بره سربازی دیگه فقط محمد و مهناز و سمن میمونه. دیشب به حاج گفتم حسابی یک دفعه قریب میشی خدا رو شوش بازم این دوتا پیشمون هستن خانم جون همانطور که ظرف نقلش رو دور میگرداند گفت خدا ایشالله عمر طولانی به خودتو هاجاقا بده مادر زن و شوهر تا وقتی با هم هستن هیچ کدوم قریب نیستن زن و شوهر ریشه زندگی هستن بچه ها برگوبار برگم یه روز به شاخه است یه روز نیست اصل ریشه است ریشه که باشه و درخت سر جا بار هم دوباره سر برمیگرده. قول بهت میدم چند سال دیگه همشون با بچه هاشون برگردن و سرتون انقدر شلوغ بشه که دیگه واسه یک خورده تنهایی دل تنگ بشه محترم خانوم با لبخندی که صورتش را پوشانده بود گفت تو رو خدا خانوم جون دعا کن خدا به همه شنو به خصوص اول به فاطمه بچه های سالم بده. قدمشون روی چشم های ما. خانم جون گفت. به فاطمه هم بچه میده. صبر داشته باش. حالا همش پنجشش ساله. دکترها هم که گفتن سالم هستن. دیگه قصه یه چی رو میخوری؟ هر چیزی یه ساعتی داره. منتها صبر ما کمه. محترم خانم گفت آقا رزا هم همیشه همینو میگه بازم خدا رو شکر دامادم خوب و با ایمانه همش میگه هرچی خدا بخاد تازه من و فاطمه رو هم اون دلداری میده من که همش را میرم و دعاش میکنم مادر گفت همین براشون از ست تا دو دکتر بهتره دعای خیر مادر غیر ممکنه گیرا نشه خانم جون یک دفعه در حالی که برق شیطنت همیشگی به چشمهایش برگشته بود با نگاهی به من وزری گفت والا محترم خانم من که میگم قصه که نباید بخوری هیچ از حالا به بعد بایست روزی چند دفعه خدا رو شکر کنی هم ما یکی دونه داشتیم هم شما یه تعتقاری که بالاخره از خونه بیرونشون کردیم و یه نفس راحت کشیدیم. مادر اینا همه جای شکر داره مگه نه؟ با تعیید مادر و محترم خانم و خنده هایشان بر سر و صدای من و زری فضا تغییر کرد. خانم جون با روش همیشگی خودش دوباره شادی و نشاط را به جمع ما برگرداند و محترم خانوم انگار قصه هایش را فراموش کرده باشد با چهره آرام و مهربان و پر از آرامش از خانه ماره. حالا که به آن روزها فکر می کنم می بینم نزدیک دلها و همراهی و محبتی که بین ما بود در کوچک شدن قصه ها و کمرنگ شدن غمهایمان چقدر مؤثر بوده. این هم یکی از خسایص عجیب است. آدم همینقدر قدر که احساس کند دلهای همراه و قمخار هست که با او هم درد و شریکند حتی اگر این دلها کوچکترین کاری جز شنیدن قصهها انجام ندهند و فقط بشنوند و همراه او و به خاطر او اشک به چشم بیاورند، مسترب بشوند و از سر اندوه آه بکشند، انگار بار غم آدم خود به خود سبک می شود، چند قم سینه را آزاد می کند و اگرچه به سختی به هر حال کمر راست می کند. همین احساس همدلی برای سووکردن بار غم چنان به جا و کاری عمل می‌کند که انگار نصف بیشتر مشکل حل شده. درست برخلاف این حالت زمانی است که ممکن است کسی حتی برای حل مشکلات قدم بردارد ولی نه به میل و رضا و مهر بلکه به جبر و اکراه و اثر وظیفه و اجبار. آه که چقدر آن موقع حال آدم ها فرق می کند مشکل حل می شود ولی به تلخی همراه با حس گزنده و نیشداری که به آدم احساس خاری و بیمقداری می دهد رنجی جان فرسا بر جان آدم چنگ می اندازد رنجی غیر قابل بیان که بر کول بار رنج های ناگفته آدم افسوده می شود چرا؟ شاید چون جهره انسان پرده محبت و مهر و عاطفه است دست ناتوانی را که به مهر و از سمیم قلب به سمتش دراز می شود بر دستهای توانا اما دل مورد ترجیح می‌دهد. مگر اندک دلمردگانی که مفهوم مهر و جهره وجودی خودشان را گم کردهاند و همیشه کورمال کورمال در پی گم کرده خیش خویش نادانسته بیراهه‌های دور را راه راست می‌پندارند و هر روز بیش از دیروز در گمراهی حسرتبارشان گم میشوند چون نمیدانند که حتی رنج در پرتو گرمای دوستی و همدلی و به پشتوانی چشمهایی که به خاطر اندوه ما نم اشک برمیدارند سیباست و قابل تحمل آه که اگر این چیزها را آن روزها میفهمیدم چقدر زندگیم فرق می کرد. اگر می فهمیدم که معنای عشق فرمان بیچون و چرا بر دیگری نیست حتی اگر با بزرگواری او این فرمان روایی ممکن شود و معنای دوست داشتن در بند کشیدن و مالک مطلق دیگری بودن نیست سلاح عشق و ناز کردن و قهر و رفتارهای کودکانه از حد که بگذرد درست برعکس عمل میکند و ریشه محبت را از بی میکند و از جا در می آورد. نظام این دنیا برپایه درک و فهم و شعور بنا شده و برپاست. عدم درک و بیشعوری و کمعقلی در هر منحلی از زندگی از معمولی ترین روابط گرفته تا عشقهای آتشین و ریشهدار اگر مستمر و دائمی بشود قاتل رابطه و عشق و دوستی است